بله حتما دیگه تا حالا شنیدید و میدونید که به هر حال یکی از واکنش‌های بدمنشانه ای که به ادام شیخ نمر تو مملکت ما صورت گرفت این بود که خب سه سوت برادرا از در دیوار سفارت عربستان بالا رفتن و آتیش زدن و داغون کردن و بعدش هم اسم خیابونی که سفارت عربستان توی تهران توش بود رو کردن خیابون آیت الله شهید باقرالنمر نمر باقرالنمر و به همین خاطری که ما خیلی امیدواریم که دیگه از این اتفاقا برای شخصیت‌های موردعلاقه نظام مقدس نیفته واچه کاری آقا، این اتفاق همینج بخواد بیفته وگرنه دیگه آقا تمام خیابونا میشه اسم این عزیزان دیگه. مثلا می‌خواد به یکی آدرس بدی، میگی داداش مثلا یا آبجی بیا سر بشار اسد و وسط خیابون سمت راست یه فرعی هست به اسم شیخ حسن نصر الله. این شیخ حسن نصرالله میای تا ته تا ته تا تهش ته ته گُمادی میرسی به بزرگراه ولادیمیر پوتین. تا ببینید واییس قبل از اینکه به ولادیمیر پوتین برسی میپیچی چپ میرسی به کوه هوی ها کوه حیات تهش میرسه به کوچ نوریال مالکی که البته قبلا نوریال مالکی قبلا اسم نوریال مالکی بود الان شده هی در بادی همونجا زنگ سووا بزنین مادر حک و چاپز میاد بیرون شما البته یاد باشه مثل اوس معمود بغلش نکنه وقت درد سر میشه حالاصه نمیدونم ولی ظاهرا بعد آماده کنیم خودمونو برای این اسم خیابونامون خیابون دیگه دیگه چیکار کنیم آدم بعد خودش آماده کنه بر همه چ. این یه مدلش.